ابنوتیسم علمیه که داره به شما تاکید میکنه که آقا خانم محترم آقای محترم تکرار قدرتمنده تلقین قدرت داره و علمیه که داره به شما یاداوری میکنه که شما دائما دارید یک سری تلقین ها رو به وجودتون تزریق میکنید اون کسی که دائما میگه من جذاب نیستم اون کسی که توی صداهای ظریف ذهنیش داره دائم غر میزنه از زندگی ناراضیه میگه من بدبختم یا اون کسی که ممکنه از دیگران برای چند بار جملهای رو شنیده باشه مثلا اینکه تو استعداد نداری تو خنگی تو حافظه خوبی نداری وقتی این تلقین ها تکرار بشه هیبنوتیز دقیقا اینو داره میگه میگه این تلقین ها اثر خودشون رو میذارن هیبنوتیز میگه که این تلقین ها میتونن یه فرد رو نابود کنن میتونن زندگی رو بپاشن زندگی یک فرد رو میتونه نابود کنه زندگی اشکی یه طرف و یه فرد، یه خانم حالا یا یه آقا میتونه با همین تلقین‌های اطرافیان نابود بشه و احتمالا این رو دیدید مثلا ممکنه دوستان یه خانومی بیان دائما بگن که مردی که باشی جذاب نیست، جالب نیست، اخلاقش بده و بعد کم کم این تکرار اثر خودش رو میذاره هیپنوتیزم دقیقاً علمی که به شما میگه مواظب چیزهایی که زیاد در خودتون تکرار میکنید یا برای دیگران تکرار میکنید باشید چون واقعیت خودتون یا دیگران رو همین چیزها شکل میدن همین چیزهایی که هی تکرارش میکنید و اگه تا به امروز دقتی نداشتید به اینکه چه چیزهایی رو تکرار میکنید چه چیزهایی رو برای دیگران تکرار میکنید در گوشه دیگران تکرار میکنید اگه این دقت رو نداشتید از امروز دقت کنید توجه کنید تلقین یه جمله کوتاه میتونه باشه یه عبارت کوتاه میتونه باشه که کسی به شما میگه یا خودتون به کسی میگید و عامل مهم اینه که حتی اگه توی یه جمله نکات هیبنوتیزمی و نکات برای عبور از مقامت ذهن و همه اینها لحاظ نشده باشه کماکم باید بگم که متاسفانه با تکرار اون با تکرار اون جمله حسر انجام میشه و اون فرد واقعا واقعیت شکل میگیره و حالا این تلقین میتونن در سلامت یک فرد باشه در سلامت خودتون میتون باشه خیلی الان مریضن به فرز و یه بیماری دارن و دائم با خودشون تکرار میکنن که من خواهم مرد یا بعد یه دکتری میاد با صلاحیت میگه تو یه ماه بیشتر زنده نمیونی و این زنده نموندن واقعا رخ میده میخوام بگم زمیر ناخداگاه شما واقعا اونقدر قدرت داره که حرف و تلقین یک دکتر رو که خیلی هم قبولش دارید، این وضعیت وحشیم تر میکنه. به پذیره و شما واقعا مریض چید و مشکلات حاد سلامت بر پیش بیاد و اکثریت مشکلات سلامتی که دارید، اکثریت مشکلاتی که تو رابطه اشخی دارید، یا اصلاح کنم کلمه اکثریت رو. همه مشکلات و چیزایی که باش مواجه میشید دقیقا از این بر که شما به یه تلقینی بهاد دارید، شاید تلقینی یا بر خودتون تکرار کردید یا اینکه هواستون نبوده اطرافیان هی به شما تکرار کردن تا اینکه دقیقا تبدیل شده به آرومی و باحسی به واقعیتی که توش زندگی میکنید